هفته بیمین کاروی کارونا و خدا را کیه؟ های زنگیه های مرتکب شده چون تقلدش هست و خودشون هم شین فروشی داره دست خالی اومده یعنی اصلا آره آره اصلا قابل قبول مالی داریم دیگه درسته؟ حسابداری و ویژیو، مالی شما که ام بی ای میخونین بعد چند تا درست دارا خوندون؟ سه تا سه تا یا ساختار سازمانی، بازاریابی، رفتار سازمانی استراتژی نه نه، استراتیجی آخرشه هم یه نومیم آخریه با دکتر مازندرانی، رفتار. رفتار رفتار رفتار، نه، ساختار, نه ساختار. رفتارو با متصندراهمون رفتار با خانم شبانی باعث می شه تون هم 10 نفره نه از خوب که خیلی خوبه بذاتو که خوشحالند از شایتون بعد اینکه دوره ام بی ای اومدین بهتون تبریک میگم پسیر درستی اومدین جای خوبی اومدیم و یه نقطه خیلی مهم اینه که هدف از ام بی ای این نیست که ما دونوان یه کارمند بیاییم توی این دوره یه کارمند بهتر از این دوره بریم اصلا هدف ام بی ای این نیست هدفش اینه که ما اگر دونوان یه کارمند اومدیم آخرش به عنوان یک کارآفرین یهریز صاحب کسب و کار رو اینجا بریم یا اگر هم کسب کاری داریم دائما با بحثهایی که استاد و مطرح می این کسب کار خودمون و مشکلات خودمون رو همش تو ذهنمون داشته باشیم و اینا رو حل کنیم یا اگر یه کارمندی هستیم که دائما یه چیزهایی تو ذهنمون میاد و خودمون اینا رو سرکوب می کنیم اینجا اینا رو بپرورونیم و رشد بدیم. Mرو یعنی مدیریت کسب و کار نه که مثلا رشده ای باشه که کارمند بهتری بودن معنیش نیست یعنی بحث اینه که همه به دنبال کسب و کارهای شخصی باشین و با این درس و این استادا دائما اون مدلیه رو که دارید یا ایدهی که تو ذهنتون هست رو اون کار کنید و اونو پرورش به و پخته کنید ممکنه یکی از استادا تو یکی از جلسه ها یه حرفی بزنه که زندگی کاری و شغلی شما کلان تغییر کنه به همین خاطره که آموزش ارزشش فوق العاده است بزرگترین دارایی آموزش به همین خاطره که رهبرای کشورها یا اونایی که متملن یا وزرا بچه هاشونو بهترین مدرسه ها و معلم ها اینا میرسانن دیگه کسی که این شکی نداره که آموزش با هر خاطر من بهتون تبریک گفتم به این دلیل که اومدین برای آموزش خودتون سرمایه گذاری کردیم. بعضی رو که آموزش هزینه است مثل بقیه هزینه هایی که ما توش بحث میکنیم در هر آموزش داره خب این نقطه دوبام که توی مدیریت کسب و کار مالی یکی از مهمترین بخش است. چرا؟ چون، نه چون رشته منه چون هدف هر شرکتی کسب <تصفح> سوده و مهندس های خورد ذهنشون از این هدف دورتره پزشگاه دوره ماسته ما بیمارستان داریم مدیر آمالش پزشگاه. یا شرکت مثلا مخابراتی داریم مدیر آملش مهندس برده. ما نمیگیم که بایدشت اشار مدیریت باشه ولی باید دوره های مدیریتی رو گذرونده باشه از جمله مالی و به همین دلیل هم که شما تو دوره ام بی ای سه تا درس مالی دارین یعنی یه دونه حساب داری دارین و دوتا مدیریت مالی که اون دوتا رو با هم ترکیب کردم برای شما زمانش رو اضافه کردم فک و هیچ درس دیگه ای شما ازش ستا نداریم. خودش نشون اهمیت بخش مالی توی کسب و کار. خب. ما بحث امروز. سواد مالی شروع میکنیم من جلسه می یک هم و معمولا سواد مالی میگم حسابداری و مدیریت مالی رو میارم تو زندگی شخصی بلکه همه ترسشون ریخت و مفاهم ساده آشنا شدن بعد میریم بحثای شرکتی رو میکنیم در حقیقت بحث امروزمون اینه که اصلا حسابداری چیه؟ گزارشته هیچ چجوریه و از این اطلاعات حسابداری ما چجوری میتونیم تو زندگی شخصی استفاده کنیم و اینکه چجوری پولدار بشیم یعنی از الان تا ساعت پنج در به یه بازی و جادی اصول اولیه حسابداری مالی رو با هم کار میکنیم وضعیت مالی تک تکتونم تک بروسی میکنیم هرکی الات مال خودشو یعنی با هم دیگه کاری به هم ندانی ولی صورت سود زندگی شخصیتون ترازنامه زندگی شخصیتون وضعیت مالی زندگی شخصیتون همش امروز روز میزنه بالا و من مطمئنم که ساعت پنج که از اینجا خارج میشین با الان ذهنتون متفاوت شده این روش ابداع دارم خب اول از همه از همه تعریف احساف بعد من پاورپوینتم هیچ وقت استفاده نمی کنم چون رشته ما رشته کمیه ما وقتی پاورپوینت استفاده کنم همه میخوابن تو بقیه رشته ها ازش استفاده میکنن ولی ما بر اساس تحقیقاتی که تو رشته مالی انجام دادیم به این نتیه رسیدیم که روش های سنتی یا دیریش خیلی بالاتر از ابزار پاورپوینته و شما هم نکته ها رو بردارید یادداشت کنید. این یادداشت کردن هم جزء مهمی از یادگیریه. اوکی؟ اگه دوست داشتید یادداشت کنید. این جزء داره آخر سرتون ولی بکنید بهتره. یه هم چیزایی که می بینید بنویسید. اول از همه تکلیف حساب درست. کسی به شش حسابداری هست؟ تمام. شما دیگه من, من اگه رو بپرسم بدونم چی پای کارشناس آی. من مدیریت شون وی خودش سادر کندی اینها ای سادر کار کرده آره اینها که من بگم میبینی که یه نگاه دیگه ایم ام اما ما از پیش الان سالهاییه داری میخونی با کاش اون سالهایه اما حس اتوجهان فرقه که کانترول میکنه با کاش از اون ترجمه زبان انگلیسی وی دنیای دیگه ولی خوبی NBA اینه که همه تو لذت میبری می‌نی NBA علوم انسانی کلا درس‌هاش اینطوریه. علوم انسانی همش واقعیه. مثلا اون که برق می‌خونه، روشش انتظاییه یعنی روش ذهنیه. دنیای فرموله همش تو تجسم، هیچ کدوم اینا رو لمس ولی اون که مدیریت میخونه لذت میبره همه چیز مثلا کارا گرات تا چجوری مدیریت کن نیرو انسانی تو چیکار کن چجوری چی پاداش بده؟ همه اینا اینیه که زاویه موتیل شرکتی کیاموف نتایسی لات هستو دیپلوم بعد از در الان ترمن شد و ترمن آخر مدیریت تکنولوژی بود. ایتی می شدی گر ایتی میشه درس مدیریتی مدیریت درسی مدیریتی داری که امروز سه تا دیگه شاید جلو بشه و یکشنبه داریش بعد شما آماده می‌شی. ریاضی، اون خیلی ذهنیه ز... ذهنیه درسته؟ درسته شما ریاضی خیلی خوش فکر میشن خیلی منطقه دیگه که فکر ریاضی میخونن تو زندگی آدمی موفق تره ولی اون درس کاربرد کاربورد واقعیش خیلی پایینه خیلی سخت سحنایه سحنایه نام خب منم لیسانس و فوق لیسانس و دکتر های سال 89 دکتر گرفتم از اون طریقات تهران و مدیر دانشگاه های دمابند هستم مدیر گروه عرشد و دکترا های حساب دارید بیایم علاقه خواست یعنی به من اگه بگن، یه،, یه جا میخوای تدریس کنی فقط یه جا میتونی تدریس کنی کجا من میگم دورهای ام چون که کسایی که تو کلاس هستن واسه نمره نیومدن سوال دارن اومدن مشکلات واقعی دارن و این خیلی چالشی چالش که وجود داره لذت بخش تو دانشگاه شما باید التماس کنی دانشجو ها اینجا هستن تو دانشگاه شما باید التماس کنی که آقا تو رو خدا بیاید من یه چیزی بهتون یاد بدم اونو هم دنبالش میسن یه حذفش کن نمی یاد بگیریم ولی اینجا همه به دنباله این هم که وقت گذاشتن و حضنه کردن که حسیده بود خب تعریف انصابداری <تصفيق> یه تعریف ساده‌ش اینه که یه سیستم اطلاعاتیه که به استفاده کنندگانش اطلاعات میده این سیستم اطلاعاتی در حقیقت کمک میکنه به هستم گیریم استفاده کنندگان هم دو بروه هم داخل سازمان و استفاده کنندگان بروه سازمانی داخل سازمان مدیره و بیرون سازمان مثل دولت که میخواد مالیات بگیره بانک با که میخواد بان با بدن یا سهامداران که میخوان سهام بخرن و بخشه دیگه در حقیقت وقت اون شیش جلسه که ما حسابداری رو میخوایم بخونیم تو این حوزه میخوایم بخونیم که ایناش کارم کنن و اون جلساتی که مدیریت مالی میخوایم بخونیم اطلاعاتی که مدیر نیاز داره کلن حسابداری کارش به نظم در آوردن و گزارش دادن برای تصمیم گیریه خلاص های رشته حسابداری مثل هر سیستم دیگه این سه بخش داره ورودی پردازش و فروجی همم هم تو رشته های خودتون خوندین سیستم این مجموعه اجزای به‌هم‌پیوسته که یه هدف مشترک دارن این کلاس شده یه سیستم اجزای به‌هم‌پیوسته که یه هدف مشترکی دارن من خودم تنهایی یه سیستم قلب من خودش تنهایی یه سیستم دیگه اصل شبکه یه سیستم همش سیستم تو کل هستی میشه یه سیستم حسابداری هم یه به هم اجزای به‌هم‌پیوسته‌ای داره که یه هدف دارن هدفشون اراده اطلاعات به استفاده کننده ها برای تصمیدید گرودی حسابداری اسناد و مدارک و داده ها میاد وارد سیستم حسابداری میشه پردازشش جلسه دیگه من توضیح در واجه به این یه قاعده به اسم قاعده به اسمان و خروجیش صورت‌های مالیه این صورت مالی شامل چهار صفحه است یکی ترازنامه یکی صورت سود و زیان یکی صورت سود و زیان جامعه و یکی هم صورت جریان اینا هر کدوم یک صفحه است یعنی حسابداری هنرش اینه که هزاران، ده ها هزار رویداد و سند و مدرک و آخر سال تو چهار صفحه گزارش میده و از این چهار صفحه شما می‌فهمید که این شرکت وضع مالیش خوبه بعد سود داره زیان داره هزنایش چطوری یه طواقه بندیش چیه همه اطلاعات میاره تو چهار صفحه اینا رو گزارشات های اینکه هر کدوم گرسده <تصفيق> پس میدینید حسابداری یه که کارش به نظم دربوردن و خلاصه کردن و طواقه بندیگرده مثلا یه حسابدارو مع آدمای منظمین هم. این رشته اینطوریه یه ای که ذهنش پراکنده است مثلا آدمی که هنر علاقه دارن هیچ موقع به نظم در نمیان و نباید هم در بیان ایتالیانو اتفاق دوران که نظم اساس پیشرفت کسی نظم نداشته باشه نمیتونه پیشرفت ولی یه جاییم هم هست که اصلا نظم مانع پیشرفته تو یه سری حوزه ها و رشته‌های دیگه مستر مثل... یعنی واقعا باعتن... اوردی میسونه. اصلاً آره مثل آدم نامون از زنی باشه ذهنش باز باشه. تو چارچوب نیاد. مثل بقیه فکر نکنه. یه جوری دیگه فکر کن. به هم بریزه. اون خودش باعث میشه. حالا من امروز شما <تصفح> رو این دو کار کنم. به شما بگم ترازو چیه؟ و تو زندگی شخصیتون ترازو نامه رو تغییر کنی. بعد می ببینیم که وضع مالیتون چطوریه بعد یه سری تکنیک روش دارم که میگم خواهیم وضع مالیتون خوب بشه اینا راهاشه و همچنین چی؟ صورت سود و زیان. این دوتا رو نمیتونم تو امبی ای درس دادم اونایی که لیسانس حسابداری می خونن ترمایه پنج و شیش به اینا می رسن یعنی مسائل پیشنیازش زیاد ولی این دوتا رو هم حسابداری با این دوتا شروع شده. و خیلی مهمتر از این دو تا اینا رو مثلا با هم کار کنیم پس یه تعریف از حسابداری گفتیم، ساختار کلیشو گفتیم. اومدیم سراغ چی؟ ترازنامه و سود و زیان. پس با ترازنامه شروع کنیم. کلاسی هست که تختش ایدازم همون سمت خودی که ایدازم تو خب ترازنامه این که میبینی اصلا ترس نداری خیلی مالی چه خبره؟ یا حساب داره چی کار میکنن؟ اون معمولا تو جلسه اول سعی میکنیم که ترس عمل رو بریزونیم با مالی رفیق بشن مثل اینکه یه نفر ریاضی بترسه اگه کاریش کنید دیگه این درست نمیشه همیشه پایای زدیب ترازنامه ترس تو توزه مالیاتیه این دیگه <تصح> خب این ترازنامه هست همینطور که میبینین دو طرف داره یکی سمت راست یکی هم سمت سمت راست دارایی ها نوشته میشه سمت چپ بدهی و سرمایه یه شرکت نوشته میشه و اینا رو که با هم جمع بزنی همیشه با هم برابر این که اسمش ترازنامه است به دلیل برابری دو طرفش این که اسمش ترازنامه است به دلیل برابری دو طرفش خب این از شکلش حالا بریم تو دلش تو مختار <تصفيق> سمت راست ترازنامه دارایی ها یعنی آن چه که داریم تمت راستی ها که داریم تعریف داره یعنی مالکش هستیم روش کنترل داریم و در آینده از استفاده استقباده می کنیم این ویژگی های هدارایی مثلا ماشینه که شما داریم سندش هم به نامتونه مالکشین، کنترل کنترول شرکتی ها رو هست و سه سال، پنج سال، یک سال، دو سال ازش استفاده خونهی که داریم زمینی که داریم پولایی که داریم این همه چیان هن؟ های شما پس سمت راست ترازگامه دعارایی ها نوشته باشیم سمت چپ ترازگامه به و سرمایه آورده. یعنی این چیزایی که ما داریم از محلی تعمیرشون کردیم قرض کردیم دارایی خریدیم یا اول خودمون بوده که دارایی خریدیم قرض کردیم ماشین خریدیم یا از پسندازای خودمون ماشین خریدیم مثلا ما رفتیم یه دیویسیش خریدیم میلیون، ده میلیون وام گرفتیم 20 میلیونم هم خودمون داشتیم نیمیشه مثلا باجناب جناح رفته همینو خریده از حسوبیش بقیه ما مشکی بانو آبی ولی اون بیست تومن قرس کرد، ده تومن خودش داشته خب <تصفيق> حالا من با جناح یه جا بریم ماشینا رو بقیل پارک کنیم یه نفر بخواد قضاوت کنه رو وضع مالی ما میگه این وضع مالی چیه؟ یک سانه یک سانه چرا؟ چون داره این طرفو میبینه. ما دو تا 206 داریم این هم مدل هم. هنر ترازنامه اینه که دو طرفه است. یعنی وضع مالی رو از دو طرف نشون میده. هم نشون میده که چی داری. هم نشون میده که اون چیزایی که داری چه جوری تهیه کردی. از چه محلی تهیه کردی؟ حالا وضع مالی این بهتره یا این؟ باید. بالایی. باید. بالایی. بهتره. چرا بهتره؟ یعنی سوداش بیشتر بده، اشکم. چرا؟ سرمایه بیشتر باشه بده، کمتر باشه بهتره. اینو فهمیدم. اختیار خودشو دیگه. چیزی که <تصفح> <تصفح> بده، بدهی بهش سود تنامون می‌گیره بدهی اصلی چون بدهی بهره داره. یعنی اینی که 10 میلیون وام با گرفته، باید هم 10 رو پس بده، هم مثلا مثلاً دومشون بهره. ولی اینی که 20 میلیون وام گرفته، هم باید 20 رو پس بده، هم مثلا 4 میلیون بهره. به همین دلیله که تو نگاه اولی که این دو تا با هم برابرن، اونی ارزشش بهتره که بدهیش کمتر. در حقیقت دوستان این طرف ترازنامه ظاهر آدمها ظاهر مالی آدمها رو نشون میده و این طرف ترازنامه باطن مالی آدمها رو نشون میده و کدوم مهمتره همیشه بین ظاهر و باطن بین ظاهر من و باطن من کدوم مهمتره تو فلسفه اینه دیگه مثل جسم و روح میمونه همیشه باطن به ظاهر ارجعیت داره من هفته پیش افته یه بیه کارخونه سوسیس کالباس تو قزوین. انقدر این کارخونه شیک بود تمیز بود مدرن، اصلا مثل کارتونا بود ساختموناش و تشکیلاتش ولی من به عنوان یه مشاور مالی به هیچ اما قضاوت نکردم من داشتم کدوم طرف رو میدیدم داشتم این ور رو میدیدم چیزایی که داره قزاوت من باید کامل باشه دو طرفه باشه ممکنه که کل این مجموعه رو با وام سی درصدی تامین کرده باشن ممکنه یا نه کل مجموعه رو با آوردهای خودشون تامین کرده باشن با سرمایه مالکان تامین کرده باشن اینو با هم فهم کنید پس ما رو ظاهر نه باید غذابت کنی مثلا شما یه نفر میدید تو خیابون مثلا مازاراتی صحب باید کدومش رو میبینی؟ اون برش رو میبینی حالا این مال خودشه مال مرزونه رانندهشه مال باباشه نمیدونم کلاورداره اینا رو نمیدونیم و رسیدن به سمت چپ ترازنامه نامه ها کار سخت و پیچیده. یعنی وقتی با اون طرف زندگی کنید تا بفهمید سمت چپ ترازنا توریه. هنر ترازنامه دوستان دو طرف بودنشه ما خیلی همون حساب انجام میدیم تو زندگی شخصیمون هم نویسیم ولی ما همیشه یه طرفه می نویسیم از دو طرف وضعیت مالی اون رو بررسی نمیکنیم. حالا یه سوال برد دارائی با سرمایه چیه؟ که مالی نخوندن همیشه اینا رو جا به جا پاتی استفاده میکنن فرق دارائی با سرمایه چیه؟ دارائی چیزه که ما داریم آره به عنوان مثال رو خونه مغازه سرمایه نه دامونه نه سرمایه چیزی جرایی نیستیبی هستش که داریم و ازش در براداته برنیم فیلم به پوش میشون دارایی کلیه چیزه میشه سرمایه همون مثلا شما نفیم به راحت بخونتون به پوشیم باشینتون به پوشیم جا دارین حال استفادتون هستش این طرازنامه بر اساس یه معادله نوشته شده. دارایی معادله همینه دیگه. دارایی، مساوی است با دهلی سرمایه. من دارم میگم فهمه اینو این چیه. ثانوی کوشمالی محاسش کلاً. ولی دارایی هم چیه که در جریانم؟ دارایی مشکوک نامش. میگه اگه بدهی هاون صرف باشه داراییمون برابر چیه؟ سرمایه. سرمایه حالا اگه بدهی داشته باشیم چی؟ سرمایه کم باشیم آفرین، ببین رشته که زود میگیم من های بدهی میشه چی؟ سرمایه یعنی همه چیزایی که داری بدهی ازش کم کنی میشه چی؟ سرمایه اسم دیگه سرمایه بهش میگن خالص دارایی ولی هیچ بهش دارایی نمیگن خالص دارایی یعنی چی؟ دارایی منهایه ولی آدم عادی اینو معمولا اشتباه استفاده میگن مثلا فلانی یه خونه 140 میتری داره یه مغازه داره یه ماشین داره سرمایش یه ملیار تومنه در حقیقت بران چیشو میگن؟ دارایی شو میگن چون نمیدونن اون بدهیاش چقدر اگر از دارایی ها بدهی ها رو کم کنیم میشه چی؟ سرمایه الان سرمایه دارایی ها شقدر سی؟ بدهی ها ده پس سرمایه یعنی خالص دارایی خالص چیزی که متعلق به خودشه چقدره؟ 20، ولی این دارایی سیه بدهیش ه و خالص داراییش یا سرمایه شقدر؟ سرمایه یعنی خالص دارایی که دیگه مال خودش اخته دیگه هیچ بحثی روش نیست به دهیاش هم صاف شده شما وقتی میخواین یه شرکت بخرین یا توی مثلا اصف شبکی آمدن گفتن آقا ما میخواییم شریک بشین یه بخشی از شرکت رو میخواییم بفروشین آیا من باید بیام اینجا این صافترون رو نگاه کنم و کامپیوترها ها اینا رو صورت مالی یعنی فقط اینا رو ببینم. من باید ببینم که چقدم؟ بدهی دارم میگه چون وقتی شریک بشن بعدا یه بخش بدهی ها را من باید پاس کنم یعنی شراکته روی این عدد سرمایه انجام میشه سرمایه مشخص میشه عددش بعد من میم یه میارم مثلا یه دنگش مال من دو دنگش مال من به نسبتش خب حالا میخوامیم با همدیگه ترازنامه های شخصی رو تهیه کنیم تو؟ ترازدامه های زندگی شخصی خودتون رو <تصفيق> یه دونه یه صفحه صفید بذار اینجورتون رو صفحه بزرگ صفید <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> یه دونه اینطوری بزرگ بکنشم <تصفيق> همه انجام بدن برای اینکه اول باید بدونی وضع مالی دار نکاتی شده. شده. نه. با کوشش باشه. نمونه میشه دیگه مثلا و poured… جدا من نمی نمیگیرم خودت میونه اومد خب موسیقی به قیاس شمه باشه بزرگ, بزرگ باشه چونک باشه به قیاس چی؟ همین دارانی همون <تصفح> واقعی باشه همه چی خیلی میشه خب من, من الان میگم دیگه که با من میاد جلالا کسی شروع نکنی من هم یاد بدم ندید خب اولین بالا بنویسید دارایی ها دو نفته ما شما زود شروع کردید خب زود شروع کردیم خب این ها بلاش کنیم دارایی ها درخو ببین مثلا دارایی ها تو زندگی شخصی چیه ما, ما کدومه ها داریم با چه عددی؟ نیم اکیم اولین دارایی که میگن از همه هم چیه؟ برچه نخت هر جا که من از این زفده را میزنم شما باید عددتون را بنویسیم خب؟ همین هده هده چجوری می‌نریسی؟ خوش کنیم هر چقدر که پول داری پول تو بانک کشم می‌شتیم بد کشم تو بانک نمیدونم تو خونتون زیر بالشتون تو جیبتون که تو این که اسطلاحاً می‌گن readily available یعنی هر لحظه می‌تونی خرجش کنی ممکنه یه پولی توی یه ای داری که سه ساله است. نباید بهش دست بزنید اون بچه نه نیست اون یه آیتم دیگه است. سپردهی بانکیه هر پولی که دارین هر زمانی میتونین خرجش کنین یه برآوردی بکنین سر کنین عدداتون واقعیت نزدیک باشه اینجا بنمیسیم خب الان مثلا من رو با توی حساب گردش مانیه هم الان هم امروز مانده شقدر پول کردو تو جیز نه پولوی تو بانکی از همون درست دیگه اونو هم باید بیاری. مانده مانده هست چقدره؟ <تصفح> ترازنامه مال یک روزه اطلاعاتش هم تو همون روز معتبره این وضعیت مالی شما رو امروز بشونه فردا ممکنین پولوی ها رو یه یه جور دیگه بشه اوکی, اوکی. برم حالا ممکن یکی بگی آقا من پولای خارجی دارم و فلان اینا این ها ندارم اگه نداریم به نویسیولو صفر بذار که به اشناسی شون آها دولار این هم همه رو به شما به ریال باید تبدیل کنین به نرخ منصفانه روز تبدیل کنین همشون باید خلاصه ریالی باشن یا تومانی باشن به دیگه هر چی که از دیگران طلب داریم با فرض اینکه وصول میشه طرف نمیم فراری فود شده اینا, دیگه. اینا رو نگیرین هر چی که طلب دارین و استنباطتون اینه که این طلب ها وصول میشه به پول تبدیل میشه جزوه دارایی است. طلباتون با فرض اینکه وصول میشه جزوه دارایی هست هر ندارین دوستان بنویسین جلوش صفت بذارین حالا این مطالباتو ما تو حساب داری دو گروه میکنی یا میگیم اسناد دریافتی اسناد دریافتنی؟, اصناد دریافتنی یعنی طلبامونه <تصفح> که بابتش چک داریم یا میگیم در اسناد دریافتنی، یعنی به پول تبدیل میشه یا یعنی طلباییه که شفاهیه اون دریافتنیه در اون حسابهای دریافتی دیگه سندی بابتش وجود نداره معنی چی این مطالبات خودش دوبخشه لن اینجوری برای اینکه باز بشه جلوتر که اونه جلسه‌های دیگه اینا رو میگیم طلبایی که بابتش سند و مدرک گرفتین ام. و تلبه‌های تو مثلا به من قرض دادی همین‌طوری شفاییم من که بابتش نگره. اون میشه حساب داری تلبه‌هایی که بابتش سند نگرفتین میشه که حساب هر چقدر که بانکی داریم از اونایی که گفتم یه سال، دو سال، سه سالی که نمیتونی خرجش کنی، سه بانکی داریم اوراق سهام. اوراق مشارکت یا سهام شرکتی رو خریدی جبه بله اوراق مشارکت چند سال پیش به قیمت روز بعد بدونی دیگه شما یه دارایی ها تو باید قیمت مثل یه میونه که ندونه جلس باش ]walker. چنده مشتری رفته میونه نمیدونم چنده قبلن آخری ولی فلان دارایو رو بشتاسیم فعلا این های تا محشود و محشودش رو قدم قدم بریم چی شو؟ پس تحان رو اگه دارین به قیمت روز زمین اگه داریم آپارتمان اگه داریم زمین مغازه اگه داریم عددا شدن بالا نزار اینا منصفانه چند میخرن؟ قیمت روز ما اینا رو میگیم Fair Value اول مسابقه فوتبال مینویسن Fair Play فطریانچی تاو معلمان آره یعنی منصف باشه کن اون مغازه مثلا اینجا هم عدالات باشه عدالایی باشه که واقعا معامله میشه اجاره مثلا اگرم اون چیزی که هر روز آمده یا نه هم بریم پول رهن دادی یعنی دو تا <تصفح> پشتو اجاره خیاری مالکش که نیست نه دارایی نیست نه نیست فا چون تو طلبات پول رهنی که دادی اینجا میاد یه مغازه ها اجاره های خونه رو اجاره کردی پول, پول را که دادی مغازه که همان توش هستیم این هم جز داویش هم هگه مالکشی آره مالکش. اگه اجاره کردی پول رهنی که دادی جزء تلاباته سر سال که خواستی بریم را پس میداری اگه میکنس همان جلح از طرف گرفته و چی چطور میشه؟ جز بدهیات نه جز بدهیات طولی... طرف گرفتیم نمی با اون پاک پول کار میخوانیم این جز بده <تصفح> داری ولی استفاده هم در می‌دوند که استفاده بانکی می‌کاره. مامان تو آره. دو طرف هم همین می‌بینیم و همون همه چی دو طرف می‌افته. اسمش میاد یا خورتم دارم, دارم بنامم مهندیس. منه؟ همه چی ازش. می‌شنم بگویم که که که که که که برای بچه‌ها مهربانم، ولی در اختیار من دواره. نه این دارایی. دارایی نیست. دارایی شما شوان... نیست. مال شما نیست؟ تو جرأتشو نداری. نداری. <تصفح> در من هست نیتت که بزنی به اسم خوده؟ نه. مثلا این چیزی من دارم، این چیزی میشه. دارایی یه وکالت، یه رسمی، مالی نداره. مالی نام خودت میشه دارایی. مثلا من اون را یه رم دادم اون داره یه خانومتونه آه ببینی باید یه چیزی من میگفتم نگفتم. این طرازان که تهیه میکنی یا باید برای شخص خود تکی تهیه کنی یا برای کل خانواده تهیه کنی این را بر... مسیرت رو شخص کنی دیگه این سواله تو زنه نمیاد خانوم هم اینو داره نداره خانم این چیز نداره مثلا میگه مینام هم حس مثلا من دادم رم رن... واصانا پولیس کلاً مردن توی چستو کار. خودیش شما واسه کاری شما باید طرازنامه‌تون خانوادگی تهیه کنی. تا آخرش اطلاعات درستی ازش بگیر. یعنی خودت و خانومت رو هم یه مجموعه فرض کنی، طرازنامه همه‌تون رو هم. خب زمین آپارتمان مغازه بعد خودرو. بله، ماشینتون اساسیه اساسیه چی میشه موبل و یخچال تلویزیون و همه رو رو یه سمسار بیاری چند میخره اینطوری؟ این طوری. اصلا نمیخره اصلا محرسایی هم اصاب میشه دیگه دیگه تو داری نمیزورها. چند تا چیز با هم میکنی؟ ببینی اینچه باید یه نه حالا حالا همین مسیری ادامه میدارم تح این مغازی موجودی نگاه میکنم چیزی که مالا بگمه دیگه آره باید، مغازه دارایات چیه بده هیچ یه سرمایت چیه اوکی. بعد میاد تو زندگی شخصی یه ترازنامه دیگه, دیگه تهیه میکنی که این سرمایه که تو مغازه داری میشه یکی از دارایات سرمایه مغازه بر یه دارایات هم می بینسی بعد به سرمایه زندگی برید تمام مغازه خوش کنید <تصفح> <تصفح> یه بار اول برای رو مغات بنوید سرمایهش که در اومد اون سرمایه دارای، یکی از دارای های زندگیام عنوان کاریه. حالا دیگه خودم میدونی چی جو میدونی جلو همونتا این رو دارید اسمالاش کاس ما تو حسابداری به این میگیم فرض تفکیک شخصیت یعنی شخصیت آدم از شخصیت شرکت ها جدا هست حساب کتابی باید جدا باشه. خب اینا هم کلن دیگه چی چیزی جانانه کلن نمیدونی جمع بزنی جمع دارایی ها این عدد مهمه تو زندگیتون باید بدونید که شما اولا چقدر دارایی دارید که مدیریت مالی کنیم اولش اینه که ما موجودمون ما... کجاست بعد از اینجا به اینجا رایشیم را مثلا یه زیورانات و یه تلا طلا نرشتیم تلا خطه رو دیگه اگر یه ارزش داره ارزش کشم کمه پلا رو بچه رو بنویسیم یه داره گوشه موبایل فرقای ارزشی در گوشه تو این هاست اینا تو دونه با همه رو کلنگ ها یه با سو این با خودش با خودش مثلا جمله فلسفی گفت کامل خوندی؟ کامل. با خود را به تو خودم به خب جمع زدی؟ همه جمع زدن؟ این عدد مهمیه این عدد تو تو باقی ثبت کنید چند وقت یه بارم که این طرازمانور مثلا میان ماهی یه بار دو ماه یه بار نهایت سه ماه یه بار باید تیه کنید این عدده باید تو ذهنتون باش این عدده باید تو ذهنتون باش شما شخصی هستید شخصی هستید با مثلا ایکس ریال دارایی اول از همه دارایی ها مون چند حالا تو خود این دعرایی ها ما اینا رو دو توره میکنیم دارای های مولد دارای های غیر مولد دارای های مولد اونای یعنی اونایی یعنی اونای که به جیب ما پول میریزن یا قیمتشون میره بالا حالا این ترازگان ای که اینجا سیچی، یه صفحه بعدش نکاتی که من میگم راجع به دارایی بدهی در درامه تجمه نکات نکاته را اون زیر هم برسید. نکات تلایی پس، اول از همه باید بدونیم جمع دارایی هامون چقدر. نکته بعدی. نکته شماره یک، جمع دارایی خودتون رو بدونید و زیر نظر بگیرید. این نکته شماره یک. و اون عدد زیر نظر بگیری این نکته شماره نکته شماره دو دارایی های خودتون رو به مولد و غیر مولد طبقه بندی کنید و غیر مولد طبقه بندی ما یه دوستی داریم لوره این میگه که به زبان خودش یه ما یه جا سر میگذاری کنی که کرره کنه کره کنه یعنی چی؟ یعنی زیاد یعنی زیادشه؟ شد لوریش اینه چی میگه یه یه جای سر یه چیزی بخر که کرره کنه هی کرره کنه کرده کنه یعنی که بره بره منظور ما دارایه هایی مولده یعنی زادوالت کنن زیاد شد قبولم زیاد شد زادوالت یعنی بچه بیری بیشتر میشه نه کرده رو به سرمایه یعنی پولت تو که میذاری تو بانک سوش میاد روش اون داره کرده میکنه آها از اون دماغه منظورش اینه به لغونه زاده خب حالا تو همین نو... ادامه همین نکته دعا های مولد اولی چی باقا. ادامه باقا. ادامه باقا. ادامه باقا. زیر نظر اول که خود زیر نظر آنها را به دو بروه مولدی خبیل مولد این جمعه آخریه شد دو حالا همین ادامه نکته دو دعا های مولد دو ویژگی داره یا ارزششون قیمتشون میره بالا مثلا چی زمین میخری گرون میشه شما گرون میشه. مغازه می‌خرید گرون میشه. یا به جیب شما پول میریزن مثلا خونه دارین سپرده بانکی ارزش تو پرانتز قیمت میره بالا. اگر از تورم بیشتر باشه درسته. خودو متغیر می‌شاپن. آره، داره. میز سر کنین، اینا همرو خیلی سوالاتون حل میشه. پس مثل زمین، مثل مغازه قیمتشون بره بالا یا پولی که گذاشی تو بانکه یا خونه ای که خریدی دادوی اجاره این داره هر ماه به جیبت پول میزه اینا دارای های مولد هست دارای های غیر مولد مثل چی؟ اینی که من آخر می نویسم همیشه این دوتا منزور همه به جیب شما پول اساسی اصلا دارای مولدی خیلی ها به اشتباه دنبال یخچول عوض کنن مبل عوض کنن دوسته رو عوض کنن فرش عوض کنن نمیدونم کمود بخرن اینا امکانات رفاهیه در حقیقت همون فردا اگه یه نفر بیاری پشیمون بشی از خریره که بخره یک پنجامه ها نمیخره از رو میشه یه نفر از با خود رو کار میکنه یا مثلا پنج تا کامیون داده دوران کار می اونجا میشه چی؟ دارایی مولد یا مثلا لباس های ما اصلا جز دارایی به حساب نمی ولی ببینین یکی یه لباس عروس خاصی داره میده. اینو میره اجاره پول میگیره پس کلا نمیگم که لباس نیست یا هست اگه ازش پول در میاری هست. اگه پولاتو داره میخوره و ارزشش میره پایین دارایی مولد نیست خب نکته شماره 3 این این عددو حساب کنید دارایی مولد تقریبا کل دارایی. استاد موسایی چی؟ میخوام کارایی شما رو برمینم که داراییاتون چجوریه؟ کارایی موالده تصمیر کل دارایی کارایی دارایی حرفه هفته حس نداشته از اونشون گفتیم موسایی چی براش حس داشته الان بچو از اینا موالده کدومه هاست نگاه کنیم بچو نه موالده یا نه؟ بله <تصفيق> نه <تصفيق> روی که همجرین افتاده تو هم سود بهش نمیخوره نمیخوره این سه سود میخوره دیگه این پول همینطوریه ترس به دایی کدام مدد خودش آره اینه هایی که, <تصفح> ای که او میزارم یعنی ممللی هست ولی روش واسه هم بزن این ممکنه, بله. از بزن. این ممکنه بله. که بره بالا اگه اونا خاره اگر که روز شماره سود میگیره برد من دوتاشو میزارم میتونه باشه میتونه نباشه ط به سوود تلق می گیره مولد میشه اگر که نه مولد نیست برده ماکی مولد او را مشار کرد مولد سهام مولد، طلو میتونه قیمتش بالا بره زمین آپارتمان مغازه خودرو اساسییت موالد نیست یعنی شما الان باید اینایی که ت زدم و جمع کنید تو صورت که و اونایی که دایرن ببشید کل بشم، بذاریم میخوام بیرم از جمع دارای که دارید چند درصدش موالده بده کرره میکنیم این عددشو به من بگیم خب اینکه مثلا دارا اومد اساسیه مثلا جمع خب یک که تو حالا نورو چیه؟ یعنی چی نامش نداری؟ یو همین می‌رسی از اصول؟ یکی صوفاینگار است. یکی صوفاینگار یعنی چی؟ یکی یعنی چی؟ یعنی کارویه یعنی از کل دوارویه یک صوفاینگاری یک سه چالامش مولد نیست باید کم کم تو زندگی تمرکز کنی از درست کنی اینجا الان مثلا کاری من مولد. دیگه باعتن باعتن باعتن باعتن باعتن باعتن هم سخته یه پنج درصد هشتشتر از اینجا نمیشه درصد این اصلا نیت نبود، چرا فاصله شد؟ شش. چه؟ آره. چرا چه شکل است؟ دو علت <تصفيق> به چند در جلو بنویسی اینجوری نه بنویسی توی دفتره اوکی حسابداری. هر چی بالغار باشه، هر چی بالغار باشه چیه؟ بهتره نه رفته دوالای میخودی بפריه. یه چیزایی داری که اینا یا قیمتش میره بالا یا بجیت پول میریزه. این چیزا برام واضح ده. این دو کدوم بهتره؟ تو؟ تاش <تص> خوبه. دو تاش خوبه. دومی درصاش کم بود. کدوم بهتره نه. بهتره نه. من با همه شوه مثل اون خیلید خونه که قیمتش میره و حالا هم میتونی را اینش میلید من یه دوستی دارم این یه املک بزرگی داره و سازنده اره آره برج و تداد های بالا هست از نظر اون دارم جواب این سوال رو میگم این مثلاً چل تا واحد داره که خالیه تو این یه سال یه سال و, و میگه که هرچی داشته باشی ولی پول تو جیبه نیاد فایده هست. این فایده نداره پوله که میاد و ما حالمون خوب میشه میگیم میخندیم مسافرات میریم تفخریم کنیم بوشبه. همینطوری که اینا هم هست و گرون هم شده ولی پول اگه نرسه این به در البته ما همه آرزو دارم که جای اون باشیم ما پولم نرسه ولی دارم میگم که بین این دوتا این پایینیه به نظر میرسه که حیات دیگه چرخه یه که باید بیا آقا تو ایران این پایینیه ارزش داره تو شرایط اقتصادی فعلی بله. اون بالایی نوستانش نمیتونه روش حساب ولی باید. بهتر از اینه که نداشته باشی بله اگر از هیچی اون بهتره خیلی بهتره ولی جریان این جری اصلا اساس مالی اینه چرا کسانه هستن که ملیارداشی ملیارداش که پول سرمایه خوابیده دارن ولی پول نمیشه بچه نفس. مثلا شما یه زمینی داره کلار کلاردش خیلی هم فکر میکنی ارزشمنده و قیمت داره 5 سال گذاشتی فروش هیچی نمیخرش میرسه به بچهاش این معلوم نیست که چقدر هست بعضی منی سرمایه گذار میکنه برای سال دیگه تمام اینا میمونه آدم نیستن. تمام این دارایی ها میمونه آدما نیستند. پس به نظر میرسه ببین اینا تو کتاب ها جایی ننوشته ها اینا چیزهایی که من ده ساله دارم اینا رو درس میدم این الگوها رو ساختم و اووردم جلو به نظر میشه که این از بالایی مهمتره. اینکه به جیب پول میاد این یعنی رفاه یعنی شما قدرت خرید داریم قدرت زندگی دارید. که؟ okay. همون جریان تو منیش اینه یعنی جریان اون نام چه آخری شدنیشت ما دارم چوری حساب دلیل که من پنج این ببینیم داریم زنگ یا نه نه احساس می‌کنم شما خودمون خاصش ببین کنیم بریم این شیس اس اس. یی. بیشتر افسرده میشی تا خسته. بهتره کلاس 12 رو. بدی ها. یای سام تو چا. بدی ها دو نقطه. آنه نومتی بدهی هستی بیایی یه بریک درگیم آنه نه یه آنه چیزهای بد داریم بعد بریم حال خوبشه بهتره یا بریم بریک بیایی بعد منزر دهال بزنم بدهی ها بدهی ها بچه ها ما توی سه طواقه میانیم اصناد پرداختنی حساب های پرداختنی غام های پرداختنی چی؟ سوابم چیه؟ وام های پرداختم. قرض اولیه دومیش چیه؟ الان دیگه بلایی. اینا بدیهیاتونه ای که بابتش چک دادید. اینا بدیهیات شفاهیتونه. میتونم ندیم. اگه این <تصفيق> نمیخواید بدی نیاورسن. همین سه تا اینجا. همین های پرداختیم. همین سه یه وامی گرفتیم 20 میلیون مثلا چهار ساله الان سه سال گذشته بودی. تقریبا بگی. 15 تومنش دادی 5 تومنش مونده. خیلی طول دیگه خیلی یه بکنید. عدد بذارید بهتره تا تو اینا رو ریز بنمیسی اینجا عدد بنمیسی این که باشه اصلا اول تو یه صفحه باشه توی دو تو حساب داری اینا فرموله همه هم شکلی می نمیسن تو اگه یه جا هرزان این شکلی بنیسی آب ریزی بعدم بچه تو, تو اکسل یکونه ترزوه باید خودتون تقیی کنی بعد ماهی یه وار باید عدداشو رو کنی یا همون نسبتر رو که سه. حساب کردی دارایی مولد به کل دارایی مواسبه کنی بمیزایی چیکار میکنه حواست کنی دیگه جمع میشه که داری یه چیزی میخری کتوم داری داره میخری یه چیزی میخری که پول ازشه؟ یا داری یه چیزی میخری که پوله میره بالا مونید؟ مونید؟ باید؟ چه فکر خیلی خوبه این نداشته باشه داره کم باشه بهتر از نیگه داره ازگه داشتی به هفته پیش از 245 سال، فقط سار اشتباه یه حساب، یه چه که دومانتون همه زرگه شد. ولی چی بود؟ فکر میکردم از باکی اشتصادم بود به چک دادم، نمید بود که ملیم بود. ما خب خجالت تو ما هنگ هم نکردم با تو که برگشتن. نه طرف زنگ می‌زنم. میشه به من چه؟ ریکو پاس بده، دوباره می‌خوام نه به حساب که پاس بشه حساب خراب نشه. طرف آشنا بود. طرف که چیزی که خراب نشه، شاید اعتماد. من ابدا ندیدم. یه جایی یه حسابم کم نمی‌شه. نمی‌شه یادتش بره چک کردن حساب. به عللی باید باشه. مشو یاد. باره چی؟ که ها بخشم ر Palm Beach اوشم آفان در درمونه ها قمت به بر ۶ سال suffered سه gefن خود بوجون تساف Peace سیگه بولی گزرحض آمو من خوشم رخون رد اشترکن خود tapping گزرحض ها ک lymph superfic درمونه م Finish مناده از Vis شدم تون خیلی بشه دروازه روستم م abbiamo Š denominat ما سال اولی در چکم برگشت بود گوشتان پیش میاد گفتم آره من بعید بود سال رو هست در در برگشتی تو عمرم باشتم گریشی ده هزار تو. اومد اضافه نه سالی؟ نه بوده بیست سال پیش بعد چی میشه؟ پول بوده بوده بوده بوده چی محلی بشه؟ این محلی که بیرزم من خیلی باید راحت بسید چی ده بسنه. بسنه بسنه بسنه بسنه. ده بیستم آزیگه بعد میدادم با که پاک بشه برای چون شکرگزفتیم تا ده سال حساب نتونست تا ده سال باکی پاکش کرد خودش یکی بده جمع جمع بزنیم جمع زده این؟ جمع بزنیم جمع بزنیم فرمول دیگه این؟ هم میشه اینو شماره چند؟ چهار چهار 4 4 شماره 4 اینه 9 حالا هر شماره ای دارید با جمع مواد belediye ها از میشه دیگه با دنیام جمع یه نقطه میشه که اصلا به هر شماره ای که هست هر شماره ای که هست اینو بنویسین چی اومو به تقسیم به تقسیم بر دارایی حساب‌کایی ببین چند درسته؟ شیش تصمیم هست چهار یه چی رو من زیاده چهار نیم هستیم بره توی بودی؟ چی بودی؟ موحبی سیگر بعد هلی شرکت ها برشکست شدن به خاطر اینکه مدیر آمده <خر> ها مدیریتی نداشتن، درست مدیریتی نه کندن موان مهمه تو مهندسه نمیدونه ترازه ها چیه خب برمتونی حساب داره میستنش کلا بیزاره بله حالا فرص کن، مدیر آمد باشی که حساب داری که هم قویه یه هیچی که نمیدونی سرت کلا بیزاره بله <تصفح> بازم <باسه میزارن. تصفح> پس اپسودین کرده. سو. تو که یه که خودم نفس می‌گیرم. این کردی. سال. اون تو. از زبانی بفتم بایدی زیبا نمیشون بسی از من کمتر از یک درست درست درست من پیدا کردم. من... آره چیش رسی یکی عراق سو که کوچیکه آره به آره. خاطر آره هم. جلوه جربه... باید یه من دم و هفتد توی اون جمع درست ترازده درست... جمع ترازده آره جمع ستونه شمده رو بعد اونایی که مولد بود و باید رو کل میکردیم دیگه هفتد و پنجا تش هفتد و پنجا تش مولده یه چیز یه کپ بوده یشون این صداش یکار رو در این این صداشت یکار میشه آه همین شده هم همین یعنی کمتر از یکی میشه آره همین بده خب بعد بلد. الان به که صفره این آنسان دا یک به که صفره تقسیم بره خب به دهیم صفره دیگه به دهیم هم تقسیم یک؟ مخبا میره هرچی بشید الان صفره صفره صفره یک یک چی؟ صفره؟ بسید نگه صفر بشن این یعنی چی؟ ببینه از این تفسيرات رو اجتماع معنی معنی‌ها از عدد مهم‌تره. این عدد یعنی چی؟ این عدده مثلا شده 22 درصد مثلا. یعنی 22 درصد دارایی‌های شما بدهیه. از طریق چیه؟ بدهی. و چقدرش مال خودته؟ اینو که 78 درصد. یعنی مال خودشه. حالا اون یکی که 65 درصد شد یعنی 65% دارایی هاش مال مردمه آکه چقدرش مال خودشه؟ 35% 35% به عنوان یه قاعده کلی هرچی کمتن باشه بهت کرده بهت کرده به عنوان یه قاعده کلی هرچی کمتر باشه هرچی کمتر باشه به زدیه دیگه بهره داره اگه بهره نداشته باشه باز فرم کنه خب نکته هر شوره که هست. میشه پنج. شکستن همه میشه. نکته بعدی. وام بگیریم یا نگیریم بگیریم نگی باشیم این ساید من در جاهر شون این که با آیش هم خودش خیمال نمی‌کنم، نمی‌ذاره من بگیرم، من بگیرم من که بجرد کنیش این ساید بخوادیم چون من از اینجایی بود؟ این ساید بگیرم بره، این ساید به شما حضبت زیاد دادم باید کم کم میاد توی چارچو بگیریم یا نگیریم ماگر بگیریم با بشان رو در یه سواله بگیم بعضی میگن ما همه زندگیمون با بامه الان این قصر قطوریم و کار کنه داریم همهش بام بوده ده اینجا بام ما رو بدده خیلی از دهره ده دادیم دادیم همه زندگیمون از این سوال. باید دوشتی باید دسته باما میشه بزنیسر. این سوال جواب یکسانی ثانی نداره چی؟ <تصفيق> را. نکته ناستم. بود که وام بگیریم یا نگیریم برد. خیلی هستن که میشنوی ازشون من همه زندگیمو و کارخونم و, و خونم و ماشینالاتم خونم این همه با وامه اگه وام نبود من هیچی نمیشدم از یه طرف دیگم از یه سری ها میشنبی که وام همه دارای های ما رو از بین برد بهره و نزول و سود بانکی و اینا ما رو از بینک برد ما ورشکست شدیم حالا نکته ما اینه بلاخره وام خوبه یا وام بده جوابش اینه که بستگی داره، به چی؟ یک وامی رو که میگیری نباید هزینه کنی یعنی چی؟ یعنی وام نگیری حقوق به پرسنل بدی وام نگیری مسافرت بدی وام که میگیری باید به دارایی تبدیل کنی اونم کدوم دارایی مولد مولد یعنی <تصفح> <تصفح> وام تو اقتصادی یعنی وام رو که گرفتی تو از اینجا میگیری دیگه اینجاست درست یه چیزی واسهش میخری نخره؟ میره تو این شکلا درست یه موقعی اش میگی اساسی میخری یه موقع هست میای مادر میخری و نکته سه، اینا همه با هم یه پکیج یعنی وقتی که وام بگیری یا نه بعدا همه اینا رو چک کنی تو ذهنت نکته سه اینه که نرخ بازده اون داراییه چه اینجوری شد یعنی اون دارایی که با ایشی ایجاد می‌کنی باید بزرگتر از نرخ بهره بانکی باشه, باشه. یعنی چی؟ بنابراین ها کن اینجا بدهیه، اینجا دارایی، خب؟ تو داری یه قامی میگیری؟ داری یه قامی میگیری مثلا نرخش 25 درصده بله باید باهاش یه دارایی ایجاد کنیم که نرخش مثلا 30 و 50 درصده نرخ سودی که به ازش میبریم حتی هم 25 گرم بوده وام بازی کردی ولی اگه وام بگیری 14 درصد بگیری مثلا یه جا گذاری کنی 5 درصد ضرر یه موقع است ممکنه وام بگیری 30 درصد ولی یه دارایی بلدی که 50 درصد سود میده مثلا شینی فروشی بس باید مولد هم باشه به غیر از اون اون دارایی که مولد هست نرخ بازدهی که میریزه به جیب تو باید از نرخ بهره ای که تو به بانک میدی بزرگتر باشه اینا سه تا برقرار بود وامو بگیر حتما بگیر و اگه برقرار نبود اصلا نه. نگیر بهترین وام‌ها اونایی یعنی هستند که بهره ندارن چه نوچته اصلا چی چیزی شرکتی که کار می‌کنی مثلا چه 5 تا میگیرن چی مثلا اون داشت... یکی به کار میده <تصفيق> ببین <بده> رو به <بحره>. در <تصفيق> و به این دلیل که ما میگیم به بده وام بده ببخشید چرا چون بهره داره ریسک داره ممکنه شما کاسبی سلام پس یه باشه. دیگه سوال رو می برتم وام بگیریم یا نگیریم میگیریم گیریم نه باید مصدفش کنیم باید داروزه <تصفح> مولدش کنیم و اون دارایی یه درصد سودی که بر ما داره بزرگتر از نرخ بحره چی باشه؟ وام با باشه اینطوری باید حتما وام با رو خیلی این ما هم نگیریم رو بخریم تراح چون هم عرضشش شما از تو وحره نه وام از رو وام نگیریم از رو برده تو اینا با سودش بیان اینا رو بخریم به ما نمیگه ایچ اساسی خواهم همه مثلا بیچار زندگی کنن این اولا سیستم رو وام بگیرین دارایی مولد اینا که سود و ورد با سوداش دارین سراغ رفاهتون مافلا تا آخر عمرتت مثلا خزینه نکنین همش گذاری کنین اون میشه سیستم غلط دیگه واین پولا که درآمدن باید لذتشو ببرید چون که زندگی کوتاهه برای برای اینکه ای. دیگه تا... کامل نشودن این از این، آخریش میشه چی؟ سرمایه آخریش با میشیم، هم میشه سرمایه دو این اینو چی جوری میمیسی رو میمیم منهایی رو شد چی سرمایه دو نقطه؟ چنگل صفره قاتی باتیه ها اینجا دوست نه با از همون چه که بایدونم؟ نه سال سی و پنج شمانه اونه هم شده سال این راکس اول دیگه دیگه، ارس خیلی شیره بله مثلا راهی رو که برقیه ممکنه مثلا بیس سال برم اصلا دومشون نتونن برن دومشون نتونن برن بیس سال کردن شکل یه جمع هم بزنید که دو طرفش ما هم برابره چیشو چیگاه تو بعد آن طرف یه جلو یه همه بدهی ها سرمایه را اینجا راست همه را دیده ای نیست. اکمان زنیزی نمیدیم باید تراز <تص> یکمی ما امیدوار شدیم نه چیش بابا تمیدیم که الان شما میدونیم که چی داریم؟ الان شما میدونیم که چی داریم؟ بله چقدرش مولده؟ چقدرش غیر مولده؟ چقدر با حد این آقا گرفتین؟ و اصل سرمایه تو هم چقدر این عدد مهمه. برگشت با دارایی چی بود؟ کل مایملکتون میشه, میشه می دارایی به می ها رو کم کنین میشه سرمایی الان شما میدونین که داراییاتون چقدره؟ همچنین سرمایتون چقدره؟ با این دارمسته ها به آنتراک میرید برگشتین هم باید این ها رو بدونید یایتون رو؟ دقیقه؟